اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلی على محمد و من بین أيدينا و من خلفنا و ان ایماننا و ان شمائلنا و من جمیه نواهینا حفظا آسمان من معسیتک هاديا الى طاعتك مستعملا لمحبتک اللهم صل على محمد و آله وفقنا في يومنا هذا و ليلتنا هذه وفي جميع ايامنا لاستعمال الخير وهجران الشر و شكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع و, تباع سنن و والعمر بالمعروف والنهي عن المنكر و هیاتت اسلام و انتقاس الباطل و اضلاله و نصرت الحق و ازازهی و ارشاد زادله و معاونت الزعیف و ادراک اللحیف سلوات خطر بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم و به هینستا این و خوب خیل و باقیق مبادرین و اشرف حبیب نفسنا حبیل غاسم محمد صل الله علیه و, و, و, و, و آله نبرار الله علی, علی خلاسی ما امامنا و قاعدنا با امید قبولی تاعت و تنفیق هرچه بیشتر برای عبادت این ماه مبارک پرخیر و پرفید رمزان صحبت در دعای ششم از عدیه مبارکی صحیفه سجادیه بود امام سجاد سان من علی در دعای ششم کتاب دعای یوم و لیله هست در هر صبح و شامی و در ابتدای روز و در ابتدای شب این دعا رو قرائت میکردن و از خدا آجزانه تقاضا میکردن نکاتی رو صحبت رسید به دعای ششم و بند هیجده هم. در مجموعه حیات انسانی ما موظفیم ها رو بشناسیم دیشه ورس رد که یکی از های بزرگ خدا توفیق عبادت هست همین که ما میتونیم عابد باشیم میتونیم عبادت کننده خدا باشیم توپیق این رو داریم که در محظر خدا به عبادتش مشغول باشیم خودش یک نعمت است. هر نعمتی باید حقش رو به جا آورد و این حق به جا آوردن رو بهش میگن شکرانه همون نعمت شکرانه نعمت اطاعت که خدا به ما داده این هستش که مطیع خدا باشیم حالا که خدا ما رو در محضر خودش این نعمت رو داده که اطاعت گرش باشیم باید عملا به کار بندگی و اطاعت مشغول باشیم خیلی از انسان ها الان در همین زمان زندگی میکنن ولی توفیق عبادت ندارن چرا که نیمت عبادت رو درک نمیکنن حس نمیکنن که باید مؤمن باشن باید متعبد به بندگی خدا باشن اگر حسن بکنن بندگیشون قبول نیست چون مسلمان نیستن ما توفیق داریم مسلم هستیم توفیق داریم شیعه هستیم و این توفیق شکرانه این هست که به دستورات خدای متعال که همون بندگی خدا هست مرکز بشیم و عمل کنیم از جمله نعمت های ای که خدا به ما داده نعمت تندرستیه نعمت اعضا و جواره خدا به ما داده نعمت عقل داده نعمت توان و قدرت داده وای ما رو در اختیار ما گذاشته و این نعمت بسیار بزرگیست شکر این نعمت به این هست که انسان اونجوری که باید شاید از هر یک از این اعضا و جواره استفاده کنه چه جوری باید استفاده کنه خدا پرمایش کرده میگه شما آزاد هستین هر جایی که میخواییم نگاه کنیم هر صوتی و سده رو میخواییم بشنوین آزادی هر که میخوایم بریم حرکتی داشته باشیم مقصدی داشته باشیم با دستتون با پا و دیگر اعضا به هر شکل که می عمل کنیم دنبال کنیم ولی در بعض مواقع گوش بدین ببینیم من چی میگم اصل بر آزادیه مسالت الحریه انسان حر و آزاده مگر در بعض کارها، بعض اوقات در بعض موارد هست که خدای متعال یه باید و نبایدی رو حرکت و سکون ما قرار داده اون بعض رو که اسمش اطاعت هست اون میشه شکرانه ی معمت داشتن این اعضا اونجور که خدا فرمایش کرده از این اعضا استفاده کنیم. این میشه شکرانه ی تندرستی و توانمندی ما رضا در این پند از دعای ششوم حضرت از خدای متعال اینجور آزازانه تغازان می کنین که خدایا من رو در این روزی که پشت سر گذاشتم و این شبی که در پیش دارم موفق کن و در جمعی روزهایی که در پیش دارم موفق کن که کار خیر رو دنبال کنن. کار شر رو به کنار بندازم هجران شر یعنی از شر فرار کنم کارهای بد رو میگن شر کارهای خوب رو میگن خیر اون چه ملاک خوبی و بدی هست فرمان خداست هر چی که گفته باید خوبه اون که من کرده و نباید هست اون بدی. شره باشوکر نعمت مهما چیزی که خدا بهمون داده شکرانش رو به جا بیاریم چه جوری میگه هر نعمتی به هر شک که من گفتم مصرف کن ازش استفاده کن ازش سلام علیکم این میشه شکر نعمت منتهای این شکر نعمت شاید بشه بگم سه تا مرحله داره یکی از مراحل شکر این هست که الحمدلله بگیم که خدایا شکر را که یه همچین رو به من دادی نعمت سلامتی نعمت تبامندی این مرحله اول شکره یه مرحله از مراحل شکر این هست که انسان توجه پیدا کنه که چه نعمت داره خود توجه به نعمت از مراحل شکره. چون اگر انسان بیتوجه باشه یا دقت نداشته باشه که دروبرش چه میگذره همش آه حسرت می‌کشه. وی خدا دیگه برخره بر بعضی می‌خواد میخواد دیگه بازم شو بکره. که از اینکه که مثل که من بدشانسم و مثلا نقص و برا خیره کم بودم زیاد هست ولی باز هم شو بکرم مثلا از مهمت های بزرگ امنیته امنیتشون چون همیشه برقراره انسان توجه بهش نداره این شب ها ببینید سر صدای نمیدونم چاشن به سوری یا چی سر سدا آدم میشنبه یا مثلا نزی چیز زده میشه سر اصدای میاد میبینم امنیت هم چیز خیلی خوبیه یا سلامتی تا سلامت هست انسان توجه به این نعمت بزرگ نداره سلام علیکم وقتی در خطر میبته امنیت رو توجه میشه وقتی کسالتی دورجون شما ها پیدا میشه به سلامتی چقدر خوب بود از نعمتهایی که مشغول هست آدم دقت کنه و از مشغول بودن در بیاد برایش معلوم بشه که چه نعمتهایی داره این خودشی ای که از مراحل شکره توجه به نعمتها مرحله سوم اونجوری که خدا گپته از این نعمتها استفاده کنه، این میشه شکر عملی و نتیجه شکر ازدیاد نعمته از دیو فلا این شکر تو به ازیدن نکن سنت خداست وقتی انسان شکرانه را به جا بیاره نسبت به نعمتها خداوند اون نعمت رو بیشتر میکنه اون خیر رو بیشتر میکنه اما اگه توجه نداشته باشه از نعمت اونجو که باید استفاده نکنه داره که اگر شکل نعمت به جان کپران نعمت کنی در زرر عظیم قرار میکرین در خسران عظیم خسران ابتداش همین هست که نعمت گرفته میشه نعمت کم میشه نقایط انسان زیاد میشه میگه نمیدونم من چیکار کردم که اینطور مثلا تو گرفتاری و مشکل و مثلا منشکرات هستن ما بعد رو به بجا بیاریم بعد ببینیم آیا مثلا خدای متعال اونجوری که باید نعمت رو حفظ میکنه و زیاد میکنه یا نه قبل از اون اگه اعتراض بکنیم خود این اعتراض میشه کپرانه نعمت و گرفتاری رو گرفتاری میاد بعضی رو میگن چرا باید توجه داشت خدا خودش خلق کرده خودشان باید اداره کنه دیگه دیگه شکرانه نعمت اگر باشد خیر خدا میرسه اگر نباشد دست رحمتش برداشته میشه این چرا؟ خدای متعال ببینید دقت کنیم قبل از اینکه ما پا به زمین بگذاریم و به دنیا بیایم هر چه لازمه یه. زندگی ما بوده خلق کرده بستر رو آماده کرده اونچه مورد تکوین هست و از موارد تکوینی هست خودش خلق کرده قبل از اینکه ما به دنیا بیایم لذا آسمان و زمین رو با همه اونچه لازمی زندگی ما هست قبل از ما خلق شاده بود اما یه ای هست بعد از اینکه پا به زمین گذاشتیم از طفولیت کودکی جوانی و جوانی رسیدیم زمان تکلیف که میرسه خودامن میگه سنت من این هست بخواه بد بدن بیش از اون چیزی که حول و حوشت هست و لازمی زندگی طبیعیت هست اگر میخوای بعد درخواست کن خب برشی نمیدی خودت میدی بر این که مناطبه درخواست خودت خب ما بلاخره هر چی خوبی هست اونو لازم داریم دیگه میگه لازم داری بخواه لازم داری درخواست کن اون چه هستی تو هست لازمیه بود تو در این عالم هست و من قبل از وجود تو به دادن بستر زمین رو و آسمان رو آماده کردم برای زیست سالم تو اما وقتی بسید تکلیف میریسی اون اونچه خودت میخوای رو بهت داده میشه اگه خیر میخوای باید به خیر عمل کنی ان خیران و خیرا اگه به خیر عمل کنی خیر نصیبت میشه و ان شران و شر را. اگر به خیر عمل نکنید دنبال بدی ها باشید بهت بدی میدسید نتیجهش این سنت الهیه لذا میگن بزرگان شکل نعمت به جا این از اصول دینی هست ما یه اصول دین داریم که خوب میگن پنج تاس و هم, هم حفظیم که نارش پروه دینم هست یه اصول دینی هم داریم این سری اصول دینیه یکی از اصول دینی مسئله شکر به جاور مقابل خداست. خدا است خدا می فرماید اگر در مقابل هایی که بددادم خواسته عملی خودت رو با شکر نشون بدی لازیدن نکن من زیاد میکنم رو. ما اگر به شر میل کنی و اون چه دلت میخواد اون چه نفست میخواد اونچه هوای دل و نفست میخواد خب فشر رو میگه چنین کار اشتباه کردی تو که میدونستیمدم به خنیسی میخوری و آب بهریزی داره میدونم دلم خواست هوای دل خب نتیجهش میشه شر اما کسی که عقلش رو به کار میگیره عقل اون قدرت مانع رو میگن اون چیزی که من میکنه انسان رو از بدیها که چیزی تو وجود آدم هست میگه کار نکن زشته مثلا این کار رو نکن به نتیجه خوبی نمیرسی دو تا نیرو تو وجود آدم هست یکیش میل هوای دل هوای نفس مثلا که بهش میگن نفس اماره نبس اماره اماره به سوء به بدیه یه چیزی مقابلشه بهش میگن اقل از هزار سآل کردن از امیر المومنین سلامون علیه که اقل چیه؟ هزار فرمود ما ب... اوبیده به هر رحمان و اکتوسه به هر جنان اقل اون قبی در راکه نیست او رو میگن فکر اقل اون قدرت مانعه ایش که ما اوبدا بهل رحمانه ما رو با میداره به عبادت پروردگار متعال بکتوسه به بهل جنان اون نیروی که ما رو کمک میکنه تا بهش رو برای خودمون کسب کنی اون عقل وسیله و عبزاریه که در مقابل هوا و خاسته قرار میگیره بعضی از مبارد رو من میکنه بگیم کار رو انجام نده بگیم عقل چه چه چیزی رو به زبان ساده‌تر بگید؟ عقل دین دین عقل میلای که بدی و خوبی دینه با می وامیداره به دین داری می‌گیم چرا ما رو به چیز دیگری باونه می‌داری؟ میگه دین رو خالق گفته خالق متعال خالق من و همه پیرامون منه او میدونه که چه چیزی خوبه چه چیزی بده خودش خلق کرده با دیده به سازه خودش انسان رو خودش خلق کرده پیچ و مهره ضعیف و قوی انسان دست خودشه هرانچه پیرامونش هم هست در عالم خودش خلق کرده میگه راه استفاده از این هایی که من خلق کردم برای توی انسان راهش اینه این کارو بکن این کارو نکن اون روش طی کردن مسیر رو فرمایش میکنه و میدونه که چه چیز خوبه چه چیزی خوب نیست اقل ما رو به اون رو داره پس اقل یه قدرت مانع است، یه قدرتش که ما رو من میکنه از مخالفت فرمان خدای متعال اینو بهش میگن عقل انسان هرشه. به دین با تمامیتش عمل کنه عاقلتر میشه عقل قابل رشده قابل اکتسابه چه انسان دیندار بشه و دیندارتر بشه عاقلتر میشه پس دین راه و روش درست عمل کردن به حق عمل کردن رو میگه و عقل ابزاری برای راهنمایی ما به دینداری رزاست که گاهی در دعاها عزیزان ماده و روزخان ما که خدا انشالله همهشون رو کنه دمشون همیشه گرم باشه و سالم و توامند و با عزت باشن گاهی می خدایا توبه ما رو بپذیر ما جاهلی نبهیم مناکه که نمیدانیم آگاه نیستیم می دونیم که بدی چیه خوبی چیه عقل در مقابل جهل منظوره نه جهل در مقابل علم جهل در مقابل علم به معنای ناآگاهیه انسان وقتی دست به گناهی میزنه نوزو آگاهی که این گناهه اما آقل نیست عقلش کمه پس کسایی که صفی هستن در رجون شما تشخیص نمیده خوببت رو این هم چون دلش و میلش و اون هوای نفسش قوی هست قدرت عاقله قدرت من ضعیفه هرچی ضعیفتر جاهلتره قوی قویتر میشه جهلش کمتر جهل در مقابل عقله میگن که این توان داره خودشو میتونه نگه داره در مقابل گناه توامنده تعبیر دیگه اینه که آقله در مقابل گناه اقال میزنه به خودش اقال اون دهنبندیه که به عصم میزنن اقل هم از همین معنا میان اگر نه هوای دلش میگن طرف سنگینه تو دنیا خیلی سنگینه یعنی میلش خیلی قوی هست وقت اینکه میلش قویه مقابلش عقلش طیفه بهش میگن جاهل حضرت از خدا تقاضاهایی داره یکی از تقاضاهاش همین هست که خدایا در این شب و روزی که دارم پشت سر میگذارن و در همه ایامی که در پیش دارند، به من شکر نعم بده بتونم نعمت هایی که دارم شکرانه بهجا بیارم و اونجور که تو دستور دادی از نعمت ها سپاسگذاری کنم و شکرانه کنم اونگونه شکر تو رو به جا بیارم و عاقل بشم بتونم به خیر عمل کنم و از شر فرار کنم خدا رو قسم میدیم به حق خودش و همه انبیاش و ملائکه مقربینش به همه ما توفیق بده شاکر نعمت های این عالم باشیم و بتونیم در این ایام مبارک با عنوان روزدار خدای متعال با کسانی که در تعبد حضرت حق قدم بر حرکت من رو دنبال کنیم به برکت سلاوات بر محمد و آل محمد